اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما تحبون تنفقون من هرگز به نیکوکاری نمی رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و آنچه انفاق می بیشک خداوند به آن آگاه است.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 فتبعو ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین بگو خدا راست گفت پس از آین ابراهیم که یک تاپرست پرست و حق گرا بود و از مشکان نبود پیروی کنید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 قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون بگو ای اهل كتاب چرا کسی را که ایمان آورده است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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي كسانی که ایمان آورده اید اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را بعد از ایمانتان به کفر برمیگردانند گردانند و کیف تکفرون و تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم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 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند آن گونی که شایسته ترسیدن از اوست به ترسید و نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید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 این خداوند آیات خود را برای شما روشن میسازد باشد که شما راه یا بید وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ إلى إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته دارند و از زشتی باز دارند و آنانند كه رستگارند ولا تكونوا تکونو تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و لهم عذاب عظیم و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند پس از آن که روشن برایشان آمد به اینان برایشان عذاب بزرگی است یوم تبید دوجوه و تسود دوجوه فَأَمَّا الَّذِينَ سُعَدَّتُ وَجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ روزی که چهره های سفید و چهره های سیاه می گردد اما آنها که چهره سیاه شده به آنان گفته می شود. آیا بعد از ایمانتان کافر شدید؟ پس به سبب آنچه کفر می عذاب را بچشید و اما الَّذِينَ بِيَضَّتُ وَجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَتِ الله فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِی خَالِدُونَ و اما آنها که چهره هایشان سفید شده است در رحمت خدا خواهند بود آنان در آنجا بیدانند تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلمًا للعالمین اینها آیات خداست که آن را به حق بر تو میخوانیم و خداوند هیچگاه ستمی برای جهانیان نمیخواهد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 الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون شما بحترين أمتي هستيد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 در حالی که به نماز ایستاده اند آیات خدا را میخوانند خانند یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئیک من الصالحین به خدا و روز قیامت ایمان دارند و امر به معروف می کنند و از کار زشت و منکر باز میدارند و در انجام کارهای نیک می و آنان از شایستگانند و ما یفعلو من خیر فلن یکفروه والله بالمتقین و هر کار نیکی انجام دهند هرگز کفران نخواهد شد و خدا به حال پرهیزگاران آگاه است این... الذين كفروا لن تغني عنهم ولا من الله شيئا النار هم فيها خالدون که کافر شدند هرگز اموالشان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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا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 از غیر خودتان دوست و محرم اسرار نگیرید آنها از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند که شما در رنج و زحمت باشید راستی، دشمنی از دهان و زبانشان آشکار شده است و آنچه سینه‌هایشان پنهان می دارد بزرگتر بزرگ تر است بیشک ما آیات و نشانه ها را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید. ها انتوم اولاء تحبونهم ولا و لا يحبونكم و بالكتاب كله و اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلو عضو عليكم الأنامل من الغیر.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 و ایز غدوت من اهل که المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم و به یاد آور زمانی را که در جنگ احد بام دادان از میان خانواده خود بیرون آمدی و مؤمنان را برای جنگیدن در مواضعی میگماردی و خداوند شنوای داناست اذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله ولیهما وعلی الله فلیتوكل المؤمنون و نیز به یاد آور هنگامی که دو گروه از شما خواستند که سستی ورزند و خداوند یاور آنها بود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 إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفیكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكةنزلن آنگاه كه به مؤمنان میگفتی آیا شما را كافی نیست كه پروردگارتان؟ شما را با سه هزار فرشته که از آسمان فرود میآیند ياری كند بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم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 و ما جعله الله إلا بشرالكم ولتطمئن قلوبكم به و من نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم و خداوند آن را جز مجدئی برای پیروزی شما قرار نداد تا بدین وسیله های شما بدان آرامش گیرد و گردنه نصر و پیروزی جز از جان به خداوند توانند و حکیم نیستلیقططاع طرف من الذي كفر رو او یکبی فهیم قالی تا گروهی از کسانی را که کافر شده اند هلاک و نابود کند. یا آنان را خار و مغلوب نماید انگاه مأیوس و ناامیدانه بازگردند لیس لك من الامر شیئن او یتوب عليهم او یعذبهم فإنهم ظالمون هیچ چیز از کار بندگان در دست تو نیست یا خداوند توبه آنان را میپذیرد و آنان را میبخشاید بخشاید یا عذابشان می کند زیرا آنان ستمکارند ولله ما فی السماوات و ما فی الارض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء والله غفور رحیم.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 ایوها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید ربا را چند برابر نخورید و از خدا بترسید تا رستگار شوید و النار و, و از آتشی که برای کافران آماده شده است بهترسی. و اطیع الله و لعلكم ترحمون. و خدا و پیامبر را اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار گیرید. و سارعون. من ربكم و و عرضها السماوات و به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به قدر آسمانها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید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 و از مردم در میگذرند و خداوند نيكوكاران را دوست میدارد والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن ميَغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وَلَمْ يُصِرُّوا مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 فرُّ فيها أجر العاملين. آنها پاداششان آمرزشی از جان پروردگارشان و باغهایی است که از زیر درختان آن، چوی ها جاری است جاودان در آن میمانند و پاداش نیکوکاران و اهل عمل چه خوب است قد خالت من قبلكم سنن فسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين پیشک پیش از شما ملتهایی و سنت هایی گذشته است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 انتم الاعلون این کنتم و سوست و اندوه نگردید و شما برترستید اگر مؤمن باشید این یمسسکم قرح فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قرح مثله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 و لما یعلم الله الذین جاهدو منکم و آیا پنداش که به بهشت داخل میشوید در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما معلوم نداشته و صابران را مشخص و جدا نساخته است؟ ولا قد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه فقد رايتموه وانتم تنظرون و براستي شما مرگ و شهادت را پیش از آنکه با آن رو شوید آرزو آرزو کردید. حسان را دیدید در حالی که به آن نگاه می کردید وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتلا قلبتم على اعقابكم ومیم قالب على عقبب فلگیمر والله ن ش ووس الله مشککریم و, و محمد جز فرستادی ای نیست که به راستی پیش از او نیز فرستاادگانی بوده اند و گذشتاند آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به عقب می گردید و هرکس؟ به عقب بازگردد هرگز به خدا زیانی نمیرساند و به زودی خداوند سپاس گذاران را پاداش میدهد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 قاتل معه ربیون كثير فما وهنوا فما وهنو لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فچه بسیار پیامبرانی که همراه او توده‌های انبوه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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا فی امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین و سخن آنان جز این نبود که گفتند پروردگارا گناهان ما را بیامرز و از زیاد روی ما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 الذين كفروا على أعقابكم خاسرين. ای کسانی که ایمان آوردید اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید شما را به کفر برمیگردانند آنگاه زیان دیده برمیگردید بل الله مولاكم وهو خير بر کافران تکیه نکنید بلکه خداوند یاور و مولای شماست و او بهترین یاری دهندگان است سنلقی فی قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان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 و جایگاه ستمکاران چه بده است ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتى اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و من بعد ما آراکم ما تحبون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 بعدی خود را با شما در جنگ اهد تحقق بخشید آنگاه که در آغاز جنگ به فرمان او آنان را می کشتید. تا اینکه که شدید و در کار جنگ و جمعآوری غنیمت با یکدیگر دیگر بنزا پرداختید و بعد از آنکه آنچه را دوست می‌داشتید از پیروزی بر دشمن به شما نشان داد نافرمانی کردید بعضی از شما خواهان دنیا بود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 اِذ تَنصَرِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَفَاَبَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يرشى طائفة منكم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 و اینها برای این است که خداوند آنچه را در سینه هایتان پنهان دارید بیازماید و آنچه را در دلهایتان است خالص و پاک گرداند و خداوند به راز درون سینهها ها آگاه است.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 وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ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 از آنچه آنها جمع میکنند بهتر است ولئن متتم او قتلتم لَإِلَى الله تحشرون و اگر بمیرید یا کشته شوید قطعا به سوی خدا محشور میشوید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين پس به سبب رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو و مهربان شدی و اگر تون خوب و سخت دل بودی قطعا از اطراف تو پراکنده می شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا که خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد. الله فلا غالب لكم فمن ذا من بعده اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر شما را به خود واگذارد، پس چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد و مؤمنان باید تنها بر خدا تبارك كل کنند. و ما کان لنبیم أيغل يغلل من يغل يأتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 بسخط من الله و جهنم و المصیر آیا کسی که خوشنودی خدا را پیروی می کند همانند کسی است که به خشم خدا دچار گردد و جایگاه او جهنم است و آنچه جایی است هم درجاتون عند الله هر یک از ایشان درجاتی در نزد خدا دارند و خداوند به آنچه می‌کنند بیناست لقد من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 به راستی که خداوند بر مؤمنان مننت نهاد، هنگامی که در میان آنان پیام بری از خودشان برانگیخت که آیات او را برانها میخواند و پاکیزشان میدارد و به آنان کتاب و حکمت میآموزد و اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.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 که مؤمنان را معلوم بدارد وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاتبعناكم هم للکفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون بکسانی که نفاق ورزيدند معلوم بدارد و به ایشان گفته شد بیایی در راه خدا بجنگید یا دفاع کنید گفتند اگر میدانستیم جنگی روی خواهد داد مسلما از شما پیروی میکردیم آنان در آن هنگام به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان به زبان خیش چیزی میگویند که در دلهایشان نیست و خدا به آنچه کتمان می کنند میکنند تر است الذین قالوا لِإِخْوَانِهِمْ وقعدوا لو اطاعون ما قتلوه قل عن الموت کنتم کسانی که خود در خانه نشستند و در باری برادران خود گفتند اگر آنها از ما پیروی میکردند کردند کشته نمی بگو اگر راست می پس مرگ را از خودتان دور سازید ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَهِ بل أَحْيَاءٌ عند رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ و هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرد مپندار بلکه زنده اند نزد پروردگارشان روزی داده میشوند.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 به آنچه خداوند از فضل و کرم خود به ایشان داده است شادمانند و به کسانی که هنوز به آنها نپیوسته اند خوشوقت که نبی میبرن هاست و نه اندوهگین میشوند یستبشیغون بی نعمت من الله و فضل و أن الله لا يضيع اجر المؤمنين به نعمت و فضل خدا شادمانند به این که میبینند خداوند پاداش مؤمنان رازایت نمی کند الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالْرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أحسنوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْ أَجَرٌ عَظِيمٌ کسانی که دعوت خدا و پیامبر را پس از آنکه در میدان عهد به آنان زخم و جراحت رسید، اجابت کردند و برای تعقیم مشرکان به سوی همراه الاسد رفتند، برای کسانی از آنها که نیکی و پرهیز گاری کردند، پاداش بزرگی است. الذين قال لهم الناس, الناس قد جمعوا لكم فزادهم, فزادهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل که مردم به گفتند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 پس اگر ایمان دارید از آنها نترسید و از من بترسید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لينبروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظ في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِمٌ وَكَسَانِی که ما پندارید که به آنان مهلت میدهیم برایشان بهتر است ما فقط به آنها مهلت میدهیم تا بر گناه خود بیفزایند و برای آنها عذاب خار است. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما أنتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم چون این نبود که خداوند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 و میراس آسمان و زمین از آن خداست و خداوند به آنچه چه میکنید آگاه است لقد سمیع الله قول الذین قالوا این الله فقیر و نحن سنکتب ما قالو و قتلهم الانبیاء بغیر حق و نقول ذوقو عذاب الحلیق براستی که خداوند سخن کسانی را که گفتند خدا فقیر است و ما بیمیازیم شنید به زودی آنچه را گفتند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 هرگز به بندگان خود ستمگر نیست الذين <تصفيق> قَالُوا إن اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُمْ قُلْ قَدْ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 برای شما آمدند با ها و دلایل روشن و آنچه را گفتید برای شما آوردند پس اگر راست میگویید چرا آنها را کشتید و إن كذبوك فقد كذب رسل من قبل كجاوا بالبينات والزبور والكتاب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 اما زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و ما الحياه الدنيا الا متاع الغرور هرکس چشنده مرگ است و همانا روز قیامت پاداش هایتان به طور کامل به شما داده میشود پس هر کی از آتش دوزخ دور داشته شد و به بهش درآورده آورده شد قطعاً رستگار شده است و زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب نیست لَتُبَلَهُ اموالكم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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ, فنبذوه وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَغَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. کمان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 و فرمان روایی آسمان و زمین از آن خداست و خداوند بر هر چیزی تواناست این فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا آیات لانیل الانباء در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز های آشکاری برای خردمندان است الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك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 پس ما را از عذاب آتش نگاه دار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزيته ومال للظالمین من انصار پروردگارا کسی را که تو به آتش دوزخ دراوری یقینا او را خوار و رسوا کرده‌ای تا برای استخدام یا برانی نیست. ربنا، ایننا سمعنا منادی‌یی منادی لِالإيمان أن آمنوا بربكم ربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و عنا سیئتنا و مع الابرار پروردگارا ما شنیدیم که ندا ای به ایمان فرا میخواند خاند که به پروردگار خود ایمان بیاورید پس ایمان آوردین پروردگارا پس گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را بانیکان به بمیران. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد پروردگارا را که بر زبان فرستادگانت به ما وعده دادی به ما عطا کن. و ما را در روز قیامت رسفا مگردان به درستی که تو خلاف بعد نمی کنی فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منكم من ذکر او انثا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عين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 کسانی که هجرت کردند و از خانه‌های خود رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگیدند و کشته شدند قطعا گناهانشان را می‌بخشم و آنان را به باغ‌های بهشتی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در می‌آورم این پاداشی است از جانب خود و پاداش نیکو تنها نزد خداست لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ رَفَتَ آمد كافران در شهرها ها تو را نفری بد متاع قلیل ثم ماواهم جهنم و بئس المهاد. این متاعنا چیزی است پس جایگاهشان دوزخ است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 ولی کسانی که از پروردگارشان ترسیدند برای آنها است که از زیر درختان آن نهرها جاریست است. جا دانه داران میمانند این پذیرایی از جانب خداست و آنچه در نزد خداونده است برای نیکوکاران بهتر است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 وآت الیتام اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم إنه كان حوبا كبيرة بیتیما اموال شن را بدهيد انوال ناپاک خود را با اموال پاک یتیمان عوض نکنید و اموال آنان را همراه اموال خودتان با مخلوط کردن نخورید به راستی که این گناه بزرگی است و این خفتم الا تقسقوا فی الیتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء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 که در حق دختران یتیم نتوانید ادالت را رعایت کنید. از ازدواج با آنها صرف نظر کنید و با زنانی دیگر که مورد پسند شماست دو دو و سهسه سه چهار چهار ازدواج کنید. پس اگر بیم دارید که نتوانید ادالت کنید به یک زن یا به آنچه از کنیزان که مالک آنهایید اکتفا نمایید. این کار نزدیکتر است به این ستم تم نکنید. وَآتُمْ النساء صدقاتهن نحله فَإِن طِبْنَ لكم عن شَيْئِمْ منه نفسا فكلوه هنيئا مَرِیئًا و مهریه زنان را به عنوان هدیه باطی به خاطر به آنان بدهید پس اگر آنان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 برایشان گواه بگیرید و خداوند برای محاسبه کافی است. لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای گذاشته اند است و برای زنن نیز از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان بر جای گذاشته اند سحمیست خواه آن مال کم باشد یا زیاد این بهره و سهمی فرض و تعیین شده است و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فرزقوهم منه و لهم قولا معروفا به هرگاه خیشاوندان و و مستمندان بر تقسیم میراز حاضر شدند چیزی از آن اموال به آنان بدهید و با آنان به طور شایسته و نیک سخن بگویید وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً دِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ الله قولاً و کسانی که اگر فرزندان ناتوانی پس از خود بر جای بگذارند بر آینده آنان می ترسند باید از ستم درباره یتیمان مردم نیز بترسند پس باید که از خدا بترسند و سخنی سنجیده و درست بگویند این الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا انما جز این نیست که آتش را در شکم خود فرو برند و میخورند و به زودی به آتشی برافروخته درآیند یوصيكم الله فی اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْتَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ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 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْن آباؤكم وَأَبَنَاؤكم لَا تَجُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ این الله خداوند در باری فرزندانتان به شما سفارش میکند سهم پسر چون سهم دو دختر است پس اگر دختر بیش از دو دختر باشند دو سوم ترک بهره ایشان است و اگر یک دختر باشد نیمی از ترک از آن اوست و برای هر یک از پدر و مادر وی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 پدرانتان و فرزندانتان کدام یک برای شما سود من این احکام فریزه ای از جانب خداست و بیگمان خداوند دانای حکیم است. ولكم نصف ما ترک ازواجكم این لم یکن لهن نولد؟ فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصي بها او ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد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 من بعد وصیت یوصا بها اودین غیر مضار وصیت من الله والله علیم حلیم و برای شما نصف ترکی همسرانتان است اگر آنها فرزندی نداشته باشند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 این حكمه سفارش خداست و خداوند دانای بردبار است تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم اینها حدود الهی است و هرکس از خدا و پیام برش اطاعت کند بیرا به باقه هایی که از زیر درختان آن نهر ها است در آنجا جاودان اند و این پیروزی بزرگی است و من یعص الله و و یتعد حدوده یدخله نارا یدخله نارا خالدا فی وله عذاب مهين. و هر کس از خدا و پیام برش نافرمانی کند و از حدود او تجاوز کند و ای را در آتشی وارد میکند کند که در آن خواهد ماند و برای او عذاب خار کننده ایست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 ایناند که خدا توبه را میپذیرد و خداوند دانای حکیم است. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني توبت و وهم برای کسانی که کارهای بد مرتکب میشوند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان فرارسد میگوید اکنون توبه کردم توبه نیست و نه برای کسانی که در حال کفر می میرند اینها کسانی هستند که برایشان عذاب دردناکی آماده کردیم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهى ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ای بالمعروف که ایمان فعسى ان تكرهوا شيئا, فعسا أن تكرهو شيئا الله فيه خيرا كثيرا اي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 وَإِنْ أَرَادْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءً أَتَأْخُذُنَهُ بُهْتَانُ وَإِثْمًا مُبِينًا. دید همسری به جای همسر برگزینید.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 در حالی که شما با یکدیگر آمیزش نموده اید به آنان از شما پیمانی محکم و استوار گرفته اند ولتنکحوما نکح اباکوم من النساء الا ما قد سلف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 حُرْمَةَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَ وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتی فی حجوركم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن